مردی که رفت خدا رو پیدا کنه و نصیب و قسمتش رو بگیره. یکی بود یکی نبود. در روزگاران قدیم، مردی بود که هر چی زحمت میکشید، نه به لغمنونی می رسید و نه از شادی های زندگی اونطور که توی زندگی دیگرون میدید نصیبی میگرفت. یه روز نشست با خودش فکر کرد و فکر کرد تا بالاخره به اینجا رسید که، لابد منم مثل دیگران حق و نصیبی دارم موتاها خدای مهربون اون رو یک جای دوری به خاک سپرده که من تا حالا پیداش نکردم شاید ته دریاغای کرده، شاید اما اصلا یادش رفته نصیب و قسمت منو بده ممکنم هست که اون رو به دست فرشته هاش سپرده که به من بدن و اون رو یادشون رفته به هر حال ممکن نیست که خدای مهربون نصیب و قسمتی برای من در نظر نگرفته باشه چطوره که خودم را بیفتم برم و خدا رو پیدا کنم و نصیب و قسمتم رو ازش بگیرم چیزی که یقینه منو با دست خالی بر نمیگردونه این رو گفت و از مشراج جسم کرد و راه افتاد رفت و رفت و رفت تا تنگ قروب رسید به یک دهی و دره خونه رو زد گفت باز کنید مهمان عزیز خداست یک امشب منو راه بدید و پناه بدید خدا خودش عوضش رو بهتون میده صاحب خونه از توی خونه اومد و در رو باز کرد و وقتی که اونو دید گفت بگو کی هستی کجا میری تا راهت بدم من گفت آدم فقیر بیسر سامونی هستم که دارم میرم کوه و ها رو بگردم شاید بتونم خدا رو پیدا کنم و نصیب و قسمتم رو ازش بگیرم خانم صاحب خونه گفت، والا من حرفی ندارم که تو شب رو تو این خونه بمونی اما باید اینو بدونی که من شوهری دارم که خیلی از دیدن خون کیف میکنه و تا حالا هم 99 نفر رو کشته ممکنه که تو امشب اینجا بمونی و خبر پیدا کنه 99 نفر بشه 100 نفر اما خب از اونجا که تو داری میری خدا رو پیدا کنی ناچار یک جوری یک گوشه قایمت میکنم. یه تیک نون و یه چیک آبم بهت میدم که سر بکنی شاید خدا ما رو هم به یاد بیاره اون وقت رفت و یک نون کلوچه و یک کوزه آب برداشت و دست مسافر رو گرفت و بردش بیرونده. ده توی انبار کایی که داشتن جایی براش درست کرد که بخوابه خودشم برگشت خونه وقتی که شوهرش اومد به اون گفت یه مردی به فلان نشونی که داره میره خدا رو پیدا بکنه در خونه رو زد و من اون رو یه گوش قایم کردم که چشم زخمی از تو بهش نرسه مرد گفت حالا کجاست؟ زن گفت اگر بگم که اونو میکشی مرد گفت به خدا قسم که نه چون منم حرفی با خدا دارم میخوام به این مرد بگم که پیغام منو هم به خدا برسونه زن گفت توی انبار کاه مرد بلند شد چراغی برداشت و رفت فقیر مسافر رو پیدا کرد و قسم خورد که اونو نخواهد کشت اون وقت اون رو با خودش آورد به خونشون. برای رو که داشتن کشت و داد بزنش گفت که غذای چربانر می آماده بکنه سروز تموم فقیر رو با عزت و احترام توی خونه خودش نگه داشت و پذیرایی کرد روز چهارم که مرد میخواست راه بیفته بهش گفت اگه خدا رو پیدا کردی بهش بگو که چنین کسی به این نامونشان در فلان ده فلان محله فلان خانه هست که تا حالا 99 نفر از بندگان تو رو کشته اما منو نکشت آیا گناهش رو میبخشی؟ مسافر گفت به چشم اگر پیدایش کردم تو را بهش خواهم رساد. راه افتاد و رفت. رفت و رفت تا رسید به یک جنگل که از بس انبوه و درهم بود آفتاب به زمینش نمی اونجا یه قار بزرگ دید و وقتی که رفت دوی اون قار دید پیرمرد خمید خمیده پشتی که ریشش تا پرشالش بود سر سجاده نشسته نماز میخونه. اومد توی قار قارو صبر کرد. وقتی پیرمرد نمازش تموم شد، رفت جلو و گفت: مردی فقیرم که میرم خدا رو پیدا کنم و نصیب و قسمتم رو ازش بگیرم. اگر اجازه بدی امشب رو در قاره تو به صبح برسونم. لابد خدا خودش اجر تو خواهد داد. پیرمرد گفت: به دیده منت مهمان عزیز خداست. او را یک جای خوب بالا بالاهای قاردشوند و خودش دوباره را سر سجاده و شروع کرد به نماز خوندن وقتی که هوا خوب تاریک شد، خدا که هر شب یک قرص نان برای عابد میفرستاد، اون شب دو قرص نان فرستاد. یکی درشت و سیاه بود از سبوس جو، او یکی سفید بود و نازک از آرد کندم. آبد نون سفید و نازک رو برای خودش برداشت و نون سیاه سبوس جو رو گذاشت جده مهمونش خوردند و خوابیدند و صبح کشو، وقتی فقیر خاص راه بیفته پیرمرد عابد بهش گفت ای مرد من 20 ساله که توی این قار دور از هر کس و هر چیزی مشغول عبادت و پرستش خدا هستم اگه خدا رو پیدا کردی بهش بگو اون کسی که 20 ساله تموم تو دل جنگل توی قاری منزل کرده شب و روز مشغول عبادت تو و ریاضت کشیدنه میخواد بدون اونجایی که بعد از مرگ براش در نظر گرفته ای چجور جاییه؟ مسافر گفت بروی چشم اگر خدا رو دیدم پیغامت رو بهش میرسونم دوباره را افتاد رفت و رفت تا رسید به یک بیابونه درندشتی که در اون نه درختی بود و نه پارسنگی نه آب و نه آبادانی نه بانگ مسلمانی تمام این بیابان ریگ روان بود همینطور که توی این بیابون میرفت رسید به یک مردی که سراپا لخت بود و اونقدر هم لاغر بود که انگار یک کیسه پوستی روی یه مشت استخون کشیده باشند این مرد سوراخی در بین خاکا کنده بود و تا گلو رفته بود توی اونو همین که چشش افتاد به این فقیر مسافر پرسید آهای مرد توی این بیابون خراب به کجا میری فقیر گفت میرم شاید خدا رو پیدا کنم. نصیب و قسمت خودم رو ازش بخوام اون مرد گفت اگر خدا رو پیدا کردی بهش بگو فلان مرد به فلان نامونشان که در فلان بیابان توی سوراخ ماسه ها فرو رفته و از دنیا هیچ چیز جز همون ماسه ها نداره پیغام داده که اگه بازم بدبختی دیگه ای توی دستگاهت بهم میرسه بران بفرست منتظرم. وقتی این رو گفت با یک حال جنگ تلبی و ستیز جویی خزید توی سوراخش فقیر گفت به چشم اگر خدا رو دیدم تو رو هم بهش میرسونم. فقیر راهش رو گرفت. رفت و رفت تا رسید به یک جایی. دید یک فرشته ایستاده. رفت جلو و سلام کرد. فرشته گفت ای مرد اینجوری به کجا میری؟ فقیر گفت داشتم می رفتم خدا رو پیدا کنم و قسمتم رو ازش بگیرم. رسیدم به شما. فرشته گفت اون کسی که از جانب خدا ماموره، پیغام بنده ها رو بهش برسونه منم. بگو ببینم مطلب چیه. وغیر گفت مطلب من اینه. اون کسی که توی همه عمرش بدبخت و بینوا بوده و هیچ وقت از طرف تو چیزی بهش نرسیده اومده تو رو پیدا کنه و ازت بپرسه که آیا واقعا ما نصیبی داریم؟ یا اینکه یه جایی نصیب و قسمت ما رو قایم کردی؟ اگه اینطوره لطفاً لطفا بگو ببینیم که اونجا کجاست تا برم و قسمتم و بردارم فرش خاص بره فقیر گفت سر کن اینا رو هم که میگم بهش بگو بگو من توی راه به مردی برخوردم که 99 نفر رو کشته بود اما من رو نکشت سه شبانه روز ازم پذیرایی کرد به شرط اون که بپرسم گناهش رو میبخشی یا نه توی جنگل هم فلان آدم رو دیدم که 20 سال تمام توی قاری مشغول عبادت بود گفت ازت بپرسم اونجایی که برای بعد مرگش تهیه دیدهی کجاست یه مرد نحیف و مردنی و لخت و توی فلان بیابون برهود دیدم که پیرهن تنش ماسه زمین بود و به من گفت به خدا بگو غیر از این همه بدبختی ها اگه بازم بدبختی توی دستگاهت به هم میرسه بفرست منتظرم فنشده گفت مسیار خب سب کن تا جوابش رو برات بیارم به یک چشم هم زدن رفت و برگشت و گفت گوش بده اون کسی که 99 نفر رو کشته بود و سه شبانه روز از تو پذیرایی کرد پاک پخشیده شد به شرط اینکه دیگه دنبال آدم کشی و شرارت نره اون یکی که 20 سال ریاضت کشیده و عبادت کرده چون که شب نون سفید رو برای خودش برداشت و نون سبوس جور رو گذاشت پیش تو همه عبادتش باطله و انگار نه انگار اون یکی هم که خدا رو به جنگ تلبید و پیغام داده اگه بدبختی های دیگه ای داری براش بفرست خودت با چشمای خودت سرنوش رو شو خواهیدید خودت هم مورد محبت خدا قرار گرفتی. و وظیفه ای برات معین کرده برو و شاد باش مرد فقیر با دل خوش راهش رو گرفت و برگشت وقتی از صحرا از اونجایی که مرد بهرهنه توی ماسه فرو رفته بود گذشت دید باد سرد گزندهی میاد که شن و ماسه رو که تنها پیرهن مرد او رو برهنه بود به هوا بلند کرده فهمید که همیشه از هر بدبختی یه بدبختی بیشتری هم وجود داره اون وقت به جنگل رسید و جواب فرشته رو برای عابد بیچاره گفت از اون دهم ده گذشت به خونه اون مرد رفت و بهش مجده داد که خدا از گناهش گذشته به شرط اون که دیگه دنبال زشتی نره خودش هم از اون تاریخ مرد خوشبخت و توانگری شد و فهمید که خدا نه خودبینی رو قبول میکنه نه گردن کشی رو و خوشبختی و بدبختی بنده ها همه به دست اوست.